الانمین و صلی علیه سیدن و رسول اللہ و غالب قیبین و طاهرین المحسومین و تغییر الله بود که هست شد با شاهد را تبدیل خلق الله و نا شد آیا بشید آیه مبارکی که ناجب تبدیل خلق الله بود در اون تبدیل به فترت لاحلتی فتران ناس علیه ها شده این مناسبت وارده یه رباییاتی خودید که با عنوان فترت وارد شدن هست که من احتمال بحث رو قبل از اینکه که روشن بشه خدمت رو ارز میکنم یه بحث به خسطولات که در این بحث رو اضافه بر معنای لغوی و تفسیر و زیله آیه ها متعرض مجموعه یه روایاتی میشیم که درش عنوان خطرت آمده مجموعه یه روایاتی چه در روایات اهل سنت و چه در روایات ما در روایات شیعه شد یکی بحث اینه یکی این که آیا واقعا به لحاظ مرد چون ما از کلیم چرا را ما پیل جهات مردی در خبر روی خبر هم خیلی حساسیت نشونی آیا متن خبر سنت یا چون بل در روایات داره من از سنته یا عشون می از سنت هرش تا از سنت همون تا توی باتیجی به نظر فطر آماده آیا مطمی که ثابته به عنوان سنت ثابته یا مطمی به عنوان فطرت کدوم یکی کدوم مطمی ثابته بحث دیگر این که آیا این فطرت اگر باشی یا عشون سنت آیا محناش وجوبه چون ادیه از این ها باشه یا معلاش استحبابه یا هم از رو که یکی هم مثل همین اعفا و نحیه بردیش برشن باشه آیا بجوب مفاده خطرت یا مفادش مفاده استحبابه طبیعتا آخرین بحثی هم که یعنی اون جهات دلالی همیزه مبارک ما یستقا دومه همونر احکام جهات هم. جهات, هم. جهات آخر این است که رفت بین فطرت از یک جهل تبدیل خلق الله و تغییر خلق الله قجهت دیگه که بتونیم با اون جهت تبدیل خلق الله حکم مسئله مثلا حلقه یه یا بیشتراشی رو در بیاریم بنابراین این که مسئله بیشتراشی خلاف فطرت بفرقه تغییر خلق الله هم و خلاف رسده این بحث نهادی مرغوط میشه به همین بحثی که الان مدرش هست هر چود تا اینجا که دیدید که روایتی که الان ما تعبیر شده در مساجر ما شروع که از مساجر ما در این کتاب علی ابن ابراهیم رحم الله وارد شد را به این روایت توضیح داده شد که در کتاب غیر از این نسخه که ما فعلا از علی ابن ابراهیم داریم این روایت آمده در کتاب مجموع بیان هم مرسلن از همین کتاب علیه ابراهیم نه کرده مراد ما از مرسن نه برد در اینجا مرسله اصولا در ادهی از موارد که از علیه ابراهیم برمجموع نه رو کرده رو توضیح نداده مثلا بگه نصفتون قرارت و علاقلان یا نصفتون اوصاب آنکدا این توصیف نصف رو نداده و کرارا هم عرض شده یه میخواد تکرار بکنه. یه صحبت که هست بعضی ها خیال میکنه اگر مرموم مرموم تبرسی در مجموع بایان مطلبی به همکاری توی مکارمال اخلاقش این سرانجام در مثلا به حضور مرسله اما این قابل قبوله چون مرموم تبرسی جزو است که قابل به حجر خبر نیست یه باید علم ناشته باشی برای بحث به خبر کشون به خبر مظنون به اصطلاح حمل نمیکنه به خبری که شواهد قدی داره حمل میکنه مثلا مثل از این با و این توضیحش هم صابقانی کنه از کلیدون این هست اما زار قرائن خیلی پیش رو مشکل نبود یعنی قرائن سختی که الان ما با و مداقع می کنیم هم مثلا کتاب مظلومی که کتاب تفسیر بوده دیگر برمی اکتفاق می معلوم نیست خیلی اون قرائن رو که ادعا باشه الان صاحب مجموع باید در عده از موارد کاملا واضح مقناه ایشان از محجید خبر است عدم محجید تحبودی خبر واضح ایشی مقناه شید قاعد محجید لکه اینکه به چه اساسی وصوب یا علم یا قبول میکنن یا حجیت مبینن اون خیلی از برای ما روشن نیست اما اون که در کتاب مجموع باید نفس شده و این اختراف تعبیری بین همین نسخه موجود واذنه نسخه‌ای که ما الان دارید بین همین و معیّن ثبوت این نسخه میشه البته نه مجموعه کتاب این قسمتی که مربوط به ابن امراحه چون اصلا نمی‌فهمید کتاب قطعاً مربوط عادی ابن امراحه به چه طریقی به مارکیده و نفس و الا به لحاظی که مشربوج علی ابن امراحه جای بحثی در مجموع بیان از آمده که منوان علی ابن الراهیمه و به عنوان قالصاده منداره در کتاب فعیلی ما قالا آمده قالصاده و هر کنی اضافه برمون سر و سعود مرمون سعود هم در سر و به عنوان کتاب علی ابن الراهیم نقل کرده اونجا هم هست پس بایی این سه شاهد این صفحه که در کتاب تفسیر خود دلیل ندارد. اون تحسیل اساسی خود یکان. این حدیث بوده تقریباً شواهد شو یعنی این صفحه میشه اتفاق. در اون کتاب داره عرب قال ال عالم قال صادق ندارد. قال ال عالم و در زیر اون آیه خاتم معمولاً لطلف رای مربوط در زیر این آیه آمد. یه مناسب بحث مختصری در حد اینکه که مناسب با بحث ما باشه راجع به تفسیر احلیه شد البته این بحث اختصاص به این تفسیر موجود نداره ما مصادر و کتاب های نصفه هم داریم که انصفه هم احتیاج به بحث اهمی داره یعنی کار میخواد. و تازگی هم نداره یعنی مثلا تو زمان ما پیدا شده ما اولین نوشتاری که بانای کتاب بوده بعد سیخمبر اتا حدی هم به اختیار افراد بوده به نام از سنن و قضای یا احکام و قضای آل احکام مثلا شاید نیمه های اول نیمه اول قرن اول یا دوم اول در کوفه این کتاب مشهور میشیم تا اونجایی که ما خبر داریم در دنیای اسلام اولین کتابه که اسمشو کتاب بگذاریم مثلا باب باب کتاب و کتاب و زفر. چون مثلا عبدالله فرقان و آسم داشت اما باب باب نبود این کتاب کتاب بود کتاب و فلان در دنیای اسلام اولین کتابی که تدوین شده اینه و همین کتاب که اولین کتاب زیدی ها مخصوصا بعد از جریان شمالت زید نظرم شاهد دیرم میریم بیشه باشه سفر دوم سفر یا دوم یا ثبت سفر بلا سوم سفر بلا مشروع تر ایسه سه بون باشه این رو سه سفر دیگه این رو سه, سه بعد از جریان شهارت زید و بعد که مقصد باید خاصه دیکن این پسر ایشان یه حیاشه ایش شد علمه به دیگه منتراشتا بیشت به یمن به مدینه و اولیشون تقریبا بزرگانشون عبدالله که و و مهد که نبه امام همون شده هست سبا سبا سبا سبا مهد با عنوان مسلح احکامشون در شریعت مقدسه همین کتاب و علی رو جنسته کتاب و علی هم همین بود پیش اونا همین هر قضایی و سمنال احکام منصوب به علیه نبیتاره نجرشی افطلاعا نسال سده به ابو که بولام رسول الله شرف طبعا نسال به عبید الله به سر عبی آفری یه جوی دیگری نفهم چون نجرشی همشین کار کرده یه جوی دیگری هم به عبید الله داده اون نسالی هم که تا زمان کلیمی موجود بود شما ما اصحاب ما بهش مراجع اما نصه تا بعد از کلینی هم موجود دو اون نسخه همون نصه ایدوش آخرستن عبدالله هست عبدالله نریران نجایشی نصده به حادث اول هم میده حادث ابن عبدالله اول همدانی یعنی بینید این کتاب بسه چهار نفر نصد داده شده بسه اما اول که این کتاب مالکیه یه توضیح هست در احترال زیدیه و بوده در احترال شیعه قرار نگرسه یه شرمی داره کارش به اینجا نیست. و حتی سنی ها هم ظاهره نگاه بر نه از این کتاب بوده از این کتاب غزاره عاشورا نه. خب یک کتابی شنوای شورایاضی مأمون صدر تنان عرض میکنه کلینیه بهش اشاره داره عَمش سلیمان به مهران کوفی که مروز عَمش ایشون نشون میده که این رساله چند صفحه از امام صادقیه کتاب چی است کتاب است رساله شورای اسلام به امام نسبت داده دیگه یکی همینجوری حساب بکنید جواب مسائل محمد سنان هست، این تفسیر محمد عسکریت، این قرط غرزا هست این قرط این کتاب که یک سرنوشتی در ساله محکمانشابی که سید محترزان, محترزان نستاده که اما لیشان که نباشه اما سید محترزان شده همین کتاب تو حقه الاغول که این معلفش واضح نیست این کتاب همهیت تمهیت که ما لگرفتاده یک که حتی ما هیچ کدومش نباشه این کتاب نوااد به احواده معدیتصااب و به حسین سید سیید نسبت داده شده که ممکنه ما هیچ رو میش نباشه. الان ما الان مجموعاً عدده الان از این کتب و مصاجه داریم اقتصاط این تصویر مداراش خیلی مشکه که به عددهه از افراز نسبت داده شده و الان واضح نیست و کار خوبییان هستیم کار بشه خیلی هم کار سخته چون، بعضاش های مختصری به ذهن ما میاد اینها رو بعضی از ها درست کردن نسبت دادن و این منشأ مثلا اولیه شد هما مس این کتاب تس واقعا الان برای ما ابهام داره اون شواهدی که ما داریم تا قرن هشتم ارض کردن احتمالا خود کتاب موجود بوده و مراجعه به خود کتاب بوده از قرن دهم همین نسخه جا افتاده که دیروز ار این یه مطلب که دیوزان شایه اجمالی شد. یه مثلا این یه کار این به صوره کلی برای شناخت این کتاب ها چیه؟ افتر نمیشه کلمات اصحاب چیه؟ اونه چی آشی اون چی بود خب این کتاب ها مختلفن بعض کلمات اصحاب در مورد ها زیاده و زیاده چمه مثلا این که مورد رضا مردوم خود کتابه متن کتاب شواهد کتاب روایت کتاب خصوصیات کتاب حکامی که درش موفیده خطورتگی درش آمده عبارات تحبیراتگی درش ادبیات عدبیات حاکم بر کتاب این راه هایی که الان این فهمید کتاب خب این هم الان با مراجعی تصویقا نرزو کن با مراجعی به خود این کتاب موجود این که بگید تمام این ها از علی ابن ابراهیمی که خب قطعاً نمیشه اصفاد که ا این مجموعه موجود با این شکل موجود این تعلیق علیه نبرانی نیست حالا چه کارش کرده بحث دیگری یک یگیدل که سه روزانه خبر بعد لازم نیم گه یه زیاد زیاده احرف بسیار لمتکن قرار تعلیق نبرانی بود که خودشه شواهد دیگری هم هست سالجاش جوش نیست باعث خوندم باشه در محل خودش نشسته شده که جای طرحش این کتاب موجوده که, موجود که نیست نیست. این تعلیق نبرانی است اینو جب این تطاق مورد راه دیگه البته تره ما سه تا تره رو دیگه روزه هر سر منحیصون مجموع میشه از کلمات فهمید یکی اینکه مال علی ابن ابراهیم باشه با یه نوع ترخیص چرا ترخیص چون در مسادر قبلی از علی ابراهیم چین مرکن روی کتاب میشه بسی این ترخیص و یک نوع زیاده که روایات خودمون در شخصه مثل حدث احمد از ندریست این شما هم دیدید استاد علی ابن رامین نیست یا حدیث ابن اوغد این قطعاً اینطور نیست که علی ابن حالا بقول مرحوم های خسروی رحمت الله در قاوس آقا بعضی‌ها خیالش اینه در همدی رو جریران می‌شن تمام دنیا به هم یک میشه حالا مثلا قسمی که روایات این شخص در حاشیه بوده بعد یکی برداشت حاشیه رو به متن مخلوط کرده این احتمال قدیه یعنی احتمال فی بد نیست و محشه انستاده که تا هم علیه شده هم احتمال باشه که کتاب مال علیه ابن ابرالیم لیکن کاتب نصف هم خودش اضافه کرده هم کم کرده این احتمالش هست اما این باز با, با برخورده اطحاب نمی مثلا اصلا مجلسی علی علیه ابن ابرالیم قال حضرت از این احمد ظاهرن مجلسی تمام کتاب رو ما علیه مبرانی گردیم نمیسازه مثلا یه علیه مبرانی که کسیده خواهد و فیروهاش عدم, عدم جا بود مهمی روزه در جور ما علیه مبرانی دیاری. انصافش این احتمال خوده اما با اون کسانی که الان از تصویر نرمون بکنه نمیسازه با اون نمیسازه و تلخیصش هم احتمال میدم ولی علم و ان بعضی از روایت هایی در این کتاب بوده که مورد قبول اصحاب نبوده اینو گذاشتن همش این کتابی که روز ارکان یه طرفی از این حسابشان هست مال ابن العفایقی شاگرد شیخ تصرا شیخ در تصرا و استصحاب دو تا مورد ولی ایشون تخریس کرده دو مورد رو آورده که الوران قال علی ابن ابراهی که بلنسا در در فرورتال مات مشرکن یا کارن خود ابنال اطراقی رد کرده اقولو که این مطلب باطل است و شما اهلویت از که ابنال کانه من یا الان اون دوموره الان در این تفسیر موجود نیست اون مورد که حرف باطلی هم هست در این تفسیر موجود الان نیست این احتمال هست چیزی که تفسیز کرده این کتاب رو برد بودین حرفای باطلی که قصه حضرت موسی که این شومیا داره اینکه آیا بود سنی بود شیعه بود من میگم شما ندیدید شومیا عمل کردید به بخاری اون قصه از موسی داره خب این تو حدیث شما حث هم صحیح بقول شما جز تفصیلات حضرت علی نظر عیدنا که حضرت موسی میگه حضرت موسی از اونجا فرون بعد روزاتون چی بود بعد کوه که اون تپه که بود لباس جوزو لباس خاطره حضرت موسی خروج شد معدود نشه دخترو خویش دیگه منکری به خودشون سو. این تعریفی هم هست الانم این جزوییه که این بیچاره که تئوری کرده که هر دینامادریش کم بکنه، کلاغات درسته. الان هم همین کتاب موجود هم متأسفانه بعضی چیزهای نامناسب هست که در اون املای عطائی نگاهی متفقه آخرش یک آخرش که چیزی همه تاکید بذنه و معلوم gerek از اون کلام از عین عباش که در این کتاب مطالبی هست مورد قبول من نیست خود ایشان ابن عثاری یه مطالبی در این کتاب حضرت کلرک یادون هستی به نظر کوفه ابو طالب برر کرده باز دیگه باز در این کتاب مطالبی هست موردایید من نیست قبول ندارم و اینا مورد قبول ما نیست من اگر هر روز هم همین صد مثلا کلام مؤلفی احتمالاً این تلخیص برای این احوسوده از طرف هر دو شما مطلبی نمی دو تا عبارت تفسیر که راجع به کفر ابو طالب از رو بالله هست که الان نیست الان از تفسیر ازش شده اما ابن الرفعی نمی کنه در تفسیر هست این دو تا بحثی که لکن لکی باید اینا قوینگ کردن که الان هر کی ما بگه حج ما ما این مکه اشکال شده که شما مثلا به ما حمله میکنید و این این مکتب در کتابش موجود توسط طهریی اینا عمر طریقه تبی بخاری شیعه بو اونا اشکال میکردن در با سر سلی در همین کتاب علیه مرزایی محالی به این همونی این حرف هم؟ هر حرف بدی نیست وقتی که این کتاب مثلا مقدارش علیه مرزایی در یه زباده یه فصلای شبسی وجود از اون تفسیر فراز اون تفسیر نبازه این شب به مناسبات آیاز اضافه کرده پس این خلاصه بحث اینه که این تفسیر همون تفسیر علیه نبرهیمه با اضافات اگر هم آیات ناقصه مال خود افتر کتاب علیه نبرهیمه اون کامل نیست این ماله اونه یه من دارم ناقصه اون ناسخ اون مستنسخ اون کاتب اون خراب کرده اون کم کرده بله تفسیر اونه این احتمال بد نیست اما اثبات روشن نیست یکم این که مال جامعه کتاب باشه که معلوم ها بزرگ باته و ایشون اون مشایخی رو که مال هدیکه نهزاری به جامعه کتاب که اباسل محمده نسبت دونه و حالیم کردن کرده اون مشایخ استخار شیش نفر اسم ورد که اینا مشایخ همین اباسل محمده این مسئلشان درست نیست اینا مشایخ اباسل محمده اون مسئلشان درست, درست نیست و اون تیوشیشتان درست نیست مثلا یکی از اون احمد زیاد نوشته رواهنده سنوانشه و بالغون نصف غلط مهمه احمد زیاد مید. حالا من اون بحث نشمشان چون نمونم که شد سوال ابزای اینجوری که هیچ چیز چی من مختصر چه از مؤلف اینو با یه اشاره خاصی مشخص میشه که تا مشخص روی این کتاب بشه که مرحله این احتمال سوالی که ارشد کردم کتاب مستقلی باشه از مؤلف دیگری دیگر دیگر. لکن معظم کتاب را از تفسیر علیه نظر بود این احتمال ارجح به نظر می‌رسد با وجه کتاب چون انسان احساس میده کتاب یک کتاب واحدیه و احتمال ارجحه لکن تشکیل و محلف هم مشکل. باشه این راه دوبا بود که از کنید راه سوم مراجعه به نسخه خطی کتابی که از سوگانه این کتاب نسخه قدید نداره همه بعد از در این نسخه قرائت و مغرو و نسخه اصل و نسخه تاریخ تنی که گيروس رو دچار کردیم این امر رایزه که نسخه موجود ما جای دیگه من وارد اشاره می‌کنم که آقا سخت و مهارت کار بکنن. راه رو پیدا بکنه راه چهارم است که ما ولی در طی فعالیت‌ها که مثل منظر فکر منقران پی احرد بی منظر منقران پی احرد و اینا رو مثلا لیست برداری بکنیم ببینیم میخوره به این کتاب یادن اینا هستن اده هستن من تو هم اسم موضوعی کتاب خوده یه موضوعشون در کتاب آبوزون در زی اون رو منظر هم نقران و غیرش هم هست اده هستن البته اون شخصی که و باشه وقت مثلا مناسب سالهای 660 تا هفته 66 نه دیگه حالا مثلا برتر تا که مناسب با این سال هست اینو هست اما یه مشکل اساسی اینه که از اونو... سی باشه باشه. <تصح> اینو سیترش وارد میه یعنی اون دیگه نمی‌جازه خوشش باشه یعنی سیصد تا صد هفته یعنی واقع نشه سر چون سرواشش این روشن شد لکه این چیز با هم یه باب بسته ای چرا چون اصلا برای من اومد چون نفر اسم بودی یه کتاب باشه مانزم قرآن فی اذهن فی از اون نویسا هیچی نه نوشته که ما بتونیم مطالعه بکنیم یعنی کل معلوماتمون اینه یک آقای بنام نام غلام هم کتابی نوشته یه جا مطالعه کن سنت چهره ثالث خب این شناخت یک کتاب خیلی روشینه خیلی راهبردی بسیار راه راهبردی هیچ نتیجه واضحی نمیتونی مدیم بگیریم الان خیلی از راه این راه شهارون من راه ها رو برم بیم بست و باز راه پنجم که آجتا این راه هست بین مشایخ هست از قدیم هم بوده از راه تشریف مشایخ وارد بشیم مثلا ایشون از عباسق محمد داره بکرده اصلا ما در صادو یه روایت که علی ابن حاتم غزوینی از عباسم محمد از چند تا روایت گذاریم با دو نه میکنن اما که با یک واسه همون علی ابن حاتم نیست از عباسم محمد نه خب اول کتاب اسمین آقا دیگه یعنیم که اصلاع کتاب اسمان آقا هست تو جا من دویگه گذنم می یک جوریم از کتاب دیگه خب این مثلا یک این علی ابن حاتم از محمد ابن احمد ابن ثابت نرمو کنه چون این شخص شناخته شده نیست جزو علمای برداده و جزو واقفی هاست ما یک کتاب ابو خالد زداری نبودی رو نمیشنا این توی هم همین کتاب هست یعنی توی این کتاب محمد ابن احمد ابن ثابت وارش شده اسمش و یاد اصمان زیادی هست هستن که این علی ابن حاتم مثلا از اونها نرمو کنه این هست این اصلا. ناگوینده ایده ها هستند که خاص مثلا ابو غالب زورایی در همین طبقه از اون نقد میکنه در این کتاب رسومی شده است و علام مجرار ایدهی هستند که خاص نومانی که همین حدودا سفرهای همین حدودا است مثل ابن اود نومانی از هم نقد میکنه این داریم ما چند نفر داریم در این سالها که از ایده از مشایخ موجود در این کتاب والا از همش نه هم. مثلا احمد اردزبدی هستند اما ازده دیگه داری که از ازده از اینا حالا کنن حالا ممکن مال اینا باشه احتمالش هست در حد احتمال اما ارض کردی که ما بتوانیم یک نقطه روشنی شاید منه حساب مجموع تناسب بیشترش با زمینی روایتیش و با زمینی که ما ازش داریم و همون علیه نحاسب قدرینی بیشتر بخوره مثلا بگیم همون علیه نحاتم قردونی باشی اگه نحاتم قردونی مثلا در قردونی رو قوم بوده الان باید بگیم بغداد دار رفته چون زیاد مشاهقه بغداد کوفه هم توش هستن اینم یک نقطه باز منفی توی این جهت که خیلی وضوح نداره. از مشکلی که در این ما باز برخورد میکنیم یک نفر رو پیدا بکنیم که در این سنواد باشه دوزه. و هر حال روشن هم, هم یعنی تفسیر با این جهالت مؤلف و با این وضع که نسخه از سال 1000 بعده خود تفسیر در واقع سالمه یعنی خیلی متنش مشلح نشده داره تشریح داره نمیخوام بیان نداره کم داره اشباهی داره سنجیدونه میکنه اونم مالکه میخوام وارد بحث در تفسیر بشم اما بعضی را حضرت متن سالمه یعنی کتابی که نسخه خطیش برگرده به سال 1000 بعد یه ترواشی خیلی در میشه خیلی در نیست یعنی انصافا با نقل هایی که از این خود تفسیر شده اختلاف داره اما خیلی خراب خراب نشده یعنی کتاب نسبتا سالم بوده اما هر کسی بوده خودشان شخصت علمیش خوب بوده که مثلا نصفه و نسبتا سالم نوشه درست نوشه و بر اثر گذشته زمان تقریبا اگه تحریک و تصیبی شده باز نسبتا سالم رو مارسی. الان یعنی این بسیارم تا الان نمیتونیم چند نفر هستم گفت کاندیدای مقام شاید به این نهادن من باشه این نهادن باشه باشه اختلاف نصفه چون شواهدی که ما داریم برد بکنیم علی ابن حاطر خود علی ابن ندیده نسخه که ما رو علی ابن عباس ابن محمده ندیده احتمالاً نسخه عباس ابن محمد دیده دردید در نبوده خوب دقت کرده اون که اینکه که اوشن شد پس دو چیز مطرح اشتباه نشده یکی معلیف کتاب و نسخه که ما از معلیف کتاب داریم این یکیه یکی اون بره افتره است معلف کتاب چه نسخه از بن ابراهیم داشته این دومی دو دومیشم هست آخر خود معلف کتاب هر کسی باشه ل م کا معلف نداره. هر کسی که باشه معلف کتاب چه نسخه از بن ابراهیم داشته مثلا ما الآن طریق متعارف به علبن ارایم کلین خو کلین اوثقالناسفالعدی روشن اون طریق ما هم به علابن ابراهیم باز مهم مشکل این کتاب غیر معلف شد. پنج وجع است کردم و همیشه ابهام داره یعنی اسم ماش نمی‌دونیم روشن حضور تعریف ما نمی‌دونیم می‌دونیم که است بابا که کتاب چی؟ حال بعد از این نفرمیدینه که باز می‌گچیم تعریف هم باید در نظر بگیریم که مؤلف کتاب ایمنکا کان کتاب این نسخهی که از علی بن ابرانی داشته این نسخهش هم خیلی نسخه روشنی نیست یعنی روشن شد اشکال دو تاست نه معلف رو میشنسی نه طریقه ما به معلف روشنه اصلا مرمون سهی طاوز از نسخه لعبون میگه حدس جدی این علی ابن رو اصلا اون آقا رو نه به کیه چیه نمیشنسی اصلا این نسخه ابن طاوزی چیه اون هم حیقت نسخه رو نیمشنی. ابهامها ها خیلی زیاده دقت اضافه بر این ابهامها، ها اون چیزی که باز مهمه نسخه تفسیر علير نور پیشی مؤلف هم اونم واسه اون شیرازه این مشکل کار نه مثلا نسخه ابو الجارود نسخه ابو عبارت روشن داره هم نسخه دیگری پیش میاد این نسخه دیگری خیلی واضحه نسخه فراس نسخه فراس که این سندها اون نسخه فراس که ما اختلاف داره اما از فراتشون زیاد نقل کن. اما خود فرات هم نظروش این نداره احتمالا از زیادی ها باشد فرات یکی اون شیه نبود، شیعه نبود. فرات سه نزولیم کوچکشی، هم ذات نداره آخه بیش. وارد اون بحث فرات هم می‌بیشی، احتمالا سرخ خودش. انشالله تا. الان ایا حالا یه نسخه از کتاب عبدالله ناباس، نام کار تفسیر نعباس از که من شروع کردم همه رو اون دو نسخه ای که نام میکنه یکی دو, دو نسخه ای که چون در کتاب الابقان سیوتی راجع به تفسیر ابن عباس طرق فراوانی داره اگه اونها مقایسه کنم اون دو نسخه‌ای که در کتاب تفسیر ابن رازی دو نسخه از, از اون نسخه‌ای که در کتاب الابقا از ابن عباس معنیش میگن این مناسب با بحث فقه ما هم نیست خیلی هم می‌خازم چون این سوالی ما در بحث خارج شد حالا دیگه بحث تمومش بکنیم پس در اینجا در حقیقت ما این اشکال دیگری چگاری خود اون نسخه عباس محمد محمد نیست. چون ایشون ما درست نمی‌ساستید شخصیت علمیشان ایشان بر ما روشن نیست در مصادر عثارمانی هر چند در کتابی که علی نیل خاطر نادی یکی است شواصن سخت دیگه ایشان مثلا مجموعه کل از 4 یا 5 بشه میشه اونم صریح متعصره اندسانید. میشین علان شگی و عبد عباس محمد رو روشن بکنیم. اونی که الان مازالی مجموعش اینه لذا الان اعتماده روی این کتاب موجود به لحاظه اصناد خالی از اشکال نیست نمیزونیم اصناده اجمالاً در این که موظم این کتاب تفسیر علیه ابن ابراهینه در این بساندشم اشکال نداره تفسیر ایشانم مشروع بوده در این بساندشم اشکال نداره تفسیر ایشان متاسفانه ایشان بعضی آراء شاذه داشته مثل کفر علی طالب این هم الی اینم ظاهرا ثابت میشه بر اساس نهج البلاغه توی نسخه کرده توی این نسخه بعده حواشی غریبی اومده انصافا اینم یک فکری هم ایشان داره حالا مال نسخه است یا مال خود علیه ابن اون را هم دروص الان نمیخوین تحریف و تنقیح بکنیم و مشکل دیگری که اصلا در این تفسیر هست مؤذن این تفسیر که در اختیار ما هست مثلا دیگه به قوله آیه مبارکی مرده قاله این مشکل کار اینه این قاله ها یکی هم همینجور که هم ما داریم همین آیه که داریم در این کتاب موجوده قاله که افتلاح الله در منا آیا این قاله ها مراد در این تفسیر موجود علیه مرادیمه یا قالت صادقه علیه السلام این که از لغتهای مهم کتاب اینه کتاب پر از قاله است. البته باید جایشون از ما قاله افتاده میاد خیلی کار داره من مستقیماً من وارد بحث بشم. چون خیلی اجازه ما مقارنه کاری مقابل کردیم حساب کنیم خیلی خرابی داره. این مشکل اون کلیش عرفا مشرب جزئیش باشه که مراجعات خدا این قاله الان داره قاله. مثلا این قاله رو در کتاب سر و صور گفته در در کتاب مجموعه ر رو به صادق از اون هم ایده از متأخرین اصحاب اشتباه نشه صاحب برهان نشا تفسیر علی نبرانی و بعد تفسیر و عن صادق علی انصار هم هر به صاحب این کتاب نشه چون من محمد هاشم ارم ایده این باور شده هر در کتاب تفسیر هست از سر این موجود که تو نفر کنید مال اگر قاله داشت مراد امام صادقه غیر از این مورد که نقد از اومد ساجر اصلا کلن در کتاب برم این حساب هسته اعتماد اینه که نه این باله خود علی ابن این مال ساجر نیست این خب خیلی اثر داره این خیلی اثر داره که آیه نیست ماله قاله ساجره و آیه این تصوری که پیش ادهی که ایزای شده که این تفسیر کلن تصوری ساجریه در مقابل تفسیر عبور زارود که این تفصیل کلا تفصیل ما به صادقه به این روشن نیست به نظر ما مسادر قدیم ما چی چیزی چیزی ما در از مسادر متاخره ما آقای به روایت هم نمیخوره تنسابه <تصفيق> و زیاده اصلا مقضمشه این اون بسمه دیگه مال علیه ابراهیمه شما چیزی حدود هشتاد در سرشو بیشتر کاله است. یادوز لو کنه او هدف سنی عادی، ما ستایشوره کنه او هدف سنی عادی. اینم مؤذن کتاب قال، قال، قال اینجوری. حالا بعضی وقال علی بن ور، ور قال علی فی قولی تعالی. ور قال، ور قال که این قاله ها برمی‌گرده به امام صادق بسیار بسیار, بسیار دریبه، فوق العاده دریبه. هیچ ذریعه شاهد رو در بین نیست، مُضافاً به اکرام موزاهم به شیوه‌ای که صاحب نگاه می‌کنه که قالها ورمیان به خود علی بن ابراهیم که این کلمات کلمات خود علی بن ابراهیم باشه نه اینکه مال امام صادق صلوات الله علیه این مختصر کلام ما راجبه کتاب علی بن ابراهیم اجمالا تفسیر تعبیری از قرآن رو ما نسخه روی موجود الان بسیار بسیار مشکل کار بسیار تحریه باز با شواهد باشه با اون چه که الان در این کتاب هست همون کلمات خود علی بن ابی ال از اون حادثه می باشه که اون اینا ظاهرا کلمات خود علی بن ابی ال هست اصلا اینجا الان این روایت رو ما نسبت ددیم به سال سلام الله علی به کتاب مجموعه بیان یا کتاب تبرسی کتاب صدع ثبوت باشه حالا یوا شواشوخه درباره بحث همین حدیث فخرت و این دهتا چیزی که از خطفت آمده آیا این شواهدی داره یا شواهدی نداره ارز خدا دیگه از دوباره شواهد داریم جمع ما بین ها و شیعه ها هر دو از کردن این مسائلی که هست اینها رو کتب اهل سنت و شیعه مثلا این کتاب پنزل امان آن خواستن مراجعه کنه. جلد شیشش الباب و سانیف انواع زینه عنوان انواع زینه تو اونجا در اونجا آورده وقت در اونجا جمله روايات روایات حلق و تخصیر و و شوارد و, و و احف و لها حالا بحثای لغویشان بعد از میکنید شاید قبارات مشهورش به فرق حمزه باشه یعنی احفا و احفا این ده 6 صفحه 6۸ به بعد اه، چون اینجوری ضرف شده بحث های دوغمی شد شد در آخر مهمله بعد ار می کنیم فعلا زفتش کنیم، زفتش زفت به همین یک ضبطش استفاده بعد ضبط شده دیگه. این ضبط مبنیز و اینکه هفو به فقط حملزیه یا باقول آن دیگه همزیه قزیه ضرف نیست و فو خودم عرفو بکنید بازم به همزه فرق یکی از احفاق باشه یکی هم از احفاق چون لعفو هم خونده شده به همزه هم خونده شده که حالا بعد اینشالا عرض بکنم خب این روایت احف و شوارب, شوارب رو به سبیل ها رو از بیخ بکنید و و احف و لحال ها رو لحی رو کنید ولا تشبه و یهود اینی از احادیث بسیار صحیح و معروف و مشهور اهل سنته من چند بار ارز کردم بهتون که کتابی به نام صحیح و مال عبدالله بسن انراعاست بوده و این تنها مهم اهل سنت از زمان پیغمبر بلدار کتاب احلی مومنی اهل سنت دوران نوشتار اینه از چند بارم ارز کردن تاریخ نوشترشن ماه رمزان سال 8 هجری در, حجت در فتح مکه چون همراه پیمنبر بود عمرشم 15-15 ساله بود این توالیخ سوشنه عمر عبدالله مثلا عمرات معروف 15-16 ساله بود و شروع کرده نوشتن اول نوشتن از اونجا هست تا آخرم عمر نوشت بعدم با پیمنبرشم صحبت کرد که و از یادان دیگر ننویید شما چیه این فرم من بینید بینید بعد گفتیم شما بشر هستیم اصابالی میشید عذب میکنید ممکنه هر طرح. از فرمان بینید فرمال دی لایخ من از زبان من لایخ یخرج الا الحق. این مهمترین نوشتاره از خیلی زمان امام صادق و امام باقیان تقریبا توسط نوه نوه او این کتاب مشهور شد شخصی بنابه عمر عمر ابن شعیب بن محمد ابن عبدالله بن عمر آست نبه پسر او این کتاب معروف شد مثلا هم در عده از مسادر و شواره و افق الله ها و افقو از شعر لذیف الانا و اونچه که از این کتاب سریفه سادر از این اهل سنده هاییی نهر سنده هاییی نهر سنده کنید این سنده این امرو بنشعی این عدیه هم جده هم جره باید امرو این اشاره است این کتاب سریفه سادره او ابو ردن اشعيب، ابو ردن محمد نه عبدالله ابراهام است. بنا نظام از سنت معروف بین اهل سنت این عبارتو اینجوری می‌خونن. امر بن اشعيب بن که پدره انجبری، زنی را جدهی را بزن رو به ابيش بزنه به خودش. خلاف با داریم، صحیحه قالت الله الواله. انجزه نه عبدالله، عبدالله بن صلاح اون عمر شلیل الله. فارسی می‌گه روایت اینکه از, از, از ابو از نفراز زیادی نقل شده این جزه نوشتارهای معروف زمان فیغمبر هست باز داره که بله این حق و شواره این حق و این از ریشه بزنیم شواره و عرف و این رو بخاری داره مستند احنه عرف و و جز و شواره و غیه و شیل دیارتون وقت همون شد بیگه متنسل کنه بیزه بحث موظم روایات رو در همین کتاب که از زور اموار هست یواش باشیم بحث همین روایاتی که از با عنوان فطرت نمشده به که ریش رو رها بکنید نه که را ریش